بچه شما در آغوش شما، توی مدرسه شما، تو کتابخانه کانون شما جلو روی شماست و شما برای او فکرهایی دارید، آینده‌ای دارید، امیدی دارید در حالی که ناگهان مشاهده کنید که یک نفری که حداقل اینه که بیگانه است با این بچه شما ریشاوندید با این بچه لکن او بیگانه است یعنی بی علاقه به سرنوشت این بچه است میبینید او دستاسیش بیشتر از شماست به این بچه از همین راه کالاهای فرهنگی متداول برای رسانه‌های گوناگون خبری و فرهنگی این جای نگران است. و امروز این وجود داره چه من و شما بخوایم و چه نخواهیم نتیجه چیست این است که ما باید گردش کار رو تونتر کنیم ما باید بیشتر تلاش کنیم و میتوانیم از حافظ قرآن هم من و بسم اللہ رحمن و رحیم عبت و و ما يدريك لعل له يذكاء او يذكر رؤفتم با روح الله یک نکته ای که در ضمن مطالب این دوستان هم بود بنده هم ذهنم خیلی متوجه به اون هست این از که ما در درجه اول بایستی به ساختن و پرداختن شکل روحی کودکانمون احتمام ببرزید سعی کنید بچه ها رو با ایمان ایمان به خدا ایمان به حقیقت مطلق ایمان به اسلام ایمان اگر با ایمان این بچه پرورش پیدا کرد و شما توانیزید بذر ایمان رو در دل او بکارید در آینده هر شخصیت عظیمی از او شود ساخت. هرچه برای هر کار مناسب. اگر این انسور در او نداشته باشیم برای هیچ کاری مناسب نیست. هر چی بشه <تصفيق> ناموت این نوجوان ممکنه یک مصلح اجتماعی بشه ممکنه یک دانشمند برجسته بشه ممکنه یک انسان صالح و والا بشه ممکنه فردا کسی مثل امام بزرگوار ما بشه ممکن است در بین همین ده نفر همین پنجاه نفر که شما تعلیم میدید یه شخصی پیدا بشد که بعدها رئیس جمهور ایدان میکرد بشد وزیرش بشه. اگر چنانچه یه تربیت فاسدی بشد همین کودک اگر درست تربیت نشد ممکن است یک هیتلر از آب در بیاد یک چنگیز از آب در بیاد ممکن از همین یک نفر یک کشور را به باد فنا بده رضا خان هم یه نفر بود حقیقتا باید ارز بکنم که مسئولین امور فرهنگی کشور اگر بخواهند مسئله کودک و نوجوان را اونچنان که هست مورد احتمام قرار بدهند من خیال کنم خیلی ها از ساعت خواب شبشون هم اونایی که مسئولا خواهند زد تا به این مسئله بپردازن و صرف اون بکن دختر خانومی که قرآن کن به چی بودی دختر خانم هرنالا خانم هرنالا خانم هرنالا خانم حافظ قرآن strengthا هر می